تو را که هرچه مراده است در جهان داری چه غمز حال ضعیفان ناتبان داری بخواه جان و دل از بنده و روان بستان که حکم بر سر آزادگان روان داری میان نداری و دارم عجب که هر ساعت میان مجمع خوبان کنی میان داری بیاز روی تو را نیست نقش در خور از آنک سوازی از ختم مشکین در ارغوان داری بنوش می که سبک روحی و لطیف مدام علل خصوص دراندم که سر گران داری مکن اطاب از این بیش و جور بر دل ما مکن هران چه توانی که جای آن داری مکن اتاب از این بیش و جور بر دل ما بکن هران چه توانی که جای آن داری به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاس به قسط جان من خسته در کمان داری بکشت جفای رقیبان مدام و جور حسود که سهل باشد اگر یار مربان داری به وصل دوست گر دست می‌دهد یک دم برو که هر چه مراده است در جهان دار چو گل به دامن از این باغ می‌بری حافظ چه غم ز و فریاد باغبان دار